در سوره عصر هم موضوع تزید من دنیاس على سبیل ترقی نسبت به سوره تکاثر بیشتر الله تعالی می فرماید عصر یعنی تاریخ شاهد است ببین عصر زمان زمان منظور تاریخی گذشته تاریخ شاهد است که ان انسان لفی خسر ما بریم تاریخ را مطالعه بکنیم به این نتیجه می‌رسیم که انسان در خساره است انسان در زیان واقع شده چرا به دلیل تزیع عمرش به دلیل اینکه انسان خودش را ضائع کرد انسان با چیزهای مشغول شد که نباید با این چیزها مشغول می باید با طاعت و بندگی مشغول می باید با ذکر و فکر آخرت مشغول می اما این انسان با چیز های الا یعنی مشغول شد لذا تاریخ گواه است عصر، العصر ان الانسان لفی خسر همان انسان در خساره و در زیان است الا الذين امنوا اینجا اصول اربعه خدای تعالی بیان می فرماید مگر کسانی که عقیده خوب باشد و عملشون خوب باشد امنوا اصلاح عقیده است کسانی که اهل توحید باشند کسانی که اهل ایمان و اهل توحید باشند و عمل الصالحات کسانی که اهل عمل صالح باشند فاسد نباشند این دومین دو شرط است اولین اصلاح ایمان اصلاح عقیده دوم دو اصلاح عمل بنده بارهاش خدمت شما ذکر کردم که عمل صالح اون از عملی را میگویند که مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و وسلم باشد اگر خلاف اون که در سنت آمده ولو اینکه بظاهر عمل خوب باشد، اون عمل صالح نیست، اون عمل خرافی هست. و تواصل بالحق سومین، سومین چیز اینه که اینها هم دیگر را مومینین و کسانی که عمل صالح انجام میدن، هم دیگر را وصیت بکنند حق وصیت بکنند. بالحق یعنی چه؟ بالحق را چندین تفسیر کرده. یکی از تفسیرهاش که زحاق از ابن عباس روایت میکنه به یعنی به یعنی هم دیگر را به توحید به یک تا پرستی به دوری از شرک به دوری از خرافات توصیه بکنند و در این راه برای انسان مشکلاتی میاد برای انسان مزاحمت های میاد و تواصو به صبر هم دیگر را به صبر و به استقامت در این راه توصیه بکنند این یک تفسیر تفسیر دوم بالحق قرآن هست بالحق قرآن هست یعنی هم دیگر را به قرآن توصیه بکنند قرآن وقتی که ما اگر به معنی قرآن بگیریم کامل تر چون تر قرآن هم توحید است، هم نماز هست هم جهاد هست هم زکات هست همه اعمال هست بس هم دیگر را به اون عمل کردن به قرآن توصیه میکنند و هم دیگر را در این راه به استقامت و به صبات و تا آخر ماندن توصیه میکنند. کنند تفسیرش و تواصو بالحق جهاد است راه حق راه جهاد است اما مشقت و تکالیف جهاد کم نیستند لذا در راه جهاد هرچی سختی میاد امکان در انسان مالش را هم از دست بده و چه بسات جان عزیز را هم از دست بده لذا و تواصل به صبر همدیگر دیگر را وصیت می کنند که در مصائب صبر کنند لذا هرچی معنا عامتر بگیریم هم همدیگر را به ایمان توصیه بکنیم هم دیگر را به توحید به عمل صالح به جهاد به روز گرفتن به صدقه اصلا به قرآن و در این رابطه فقط نه تنها در یک ماه نه تنها در یک مقطع بلکه در طول زندگی و تواصل به صبر اینها از خساره نجات می کسانی که دارای این چهار وصف باشند اینها اصول اربعه هستند ایمان عمل صالح تواصل به حق تواصل به صبر